نور نور نور نور نور نور نور نور هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهدا، صدق الله العظيم. خرشید جهانی تو احمد، آزین زمانی تو احمد، با نام تو دلها تسکین هست، خلق دو جهان را تو سرمد، تو شمع زمانی نور جهانی فخر تمامین پیغمبر تو شمع زمانی نور جهانی فخر تمامین پیغمبر ای از همه خلق جهان برتر وزمهر پروزان رخشان تر بر قلب تو آن شد نازل دو جهان را تو سر و بودی تو چه شبهای بیتا در فکر من امت بیخا از چشم دین تو سیرا شبهای سیارات تو مهتا تو شام زماني نور جواني بر خير تمامينه پیغمبر تو شام زماني نور جواني بر خير تمامينه پیغمبر اي ساقي كو ما عزت فخر آلم تو ای از برتر بر طرقت می شوقت نسل آدم تو ای ساغی کوثر ماه منفت حزت فخر عالم تو ای از همه برتر بتم پیم بر شوکت نسل آدم تو تو چو خرشیدی من امیدی تو مثال شمه جوان آرا تو تمام آنچه که من جویم تو تمام مهر منی تا چه پشیمانم زآنچه كه كردم من از تو ای أحمد تو شمع زماني نور جهاني فخر تمامین پیغمبر تو شمع زمانی نور جهانی فخر تمامین پیغمبر ای محمد، ای آدالهی که بشر را از زندان جهل و نادانی آزاد کردی ای معنای باغیی عیسی رو گذشت ای نوشته نامت بر عشق علا ای کامل کننده رسالت تمام انبیا ای معنی واقعی واژه گذشت ای که تمام زندگیت را سرف امتی کردی که آل بخوبی آیت باش کرده اند آنقد ناتفاش شده که با کلام و علم به ساعت مودت شما تاختند و توئین کردند و چندی پیش به راحتشان به رسید که در جعبه جادویشان تلویزیون با ساخت فیلم موعظه و کشیدن کاریکاتور به شما توئین کردند به شما که شب و روز بی بودید و عشق تا ثامن امت ناصفات سمت و سوی بگیرند اما آنوز مؤمنان یستند که رای شما و شاگردانتان را در پیش گرفتند شاگردان چون ابو بکر سدی عمر فارو عثمان دنورن علی مرتضا، تله و ما هم میخواهیم رهروانشان باشیم چه با جان و مال چه با غلم و چه با زبان و این گونه از شروع راه من امین تو توشمع زمانی نور جهانی فخر تمامین پیغمبر تو ای بدر منور تو ی مامو تو اختر وجود تو ب تعبیر دگر از همه برتر تو ی رحمت عالم نبي احمد خاتم محمد بهسنین ہے کہ آدم تو, تو خوشید شمستان. رسول ہاشمیشای جان رندار اسلام تو تاوا تو یاسین تو الف پرتو تو یماره همه گل بابا با نام تو تسکین محمد مصطفی حبیب کبریایی تو عجن سے بشر نور بصر عزت مائی برانم بدغم خوار و ہمیں شبات و دیدار بشون تو خود آنی که من باشم دیندار، آمین آم، مت مرموت. چهگساخ شده امروز که براش اشکا ب زمین ریختی شب و روز تو ما را مبتداری رسول باسپایی تو ی احمد و محمود و نبا یه دل مایی محمد بدل تابان برای تو دهیم جان چو تله میدهیم ما و جا ن خود را آسان تعلّم دهیم ما تنوجا ن خود را آسان تکبیر